اگه ممنون شکر شکر بفرمیده آجام بفرمیده آجام بفرمیده بفرمی آجام اجازه بدید خطبه ها رو شروع کنیم السلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نسعینه و نؤمن بهی و نتوکل و علیه و نسلی على نسلم النذير الندیر از المنیر العبد المعید الرسول المسدد ابل قاسم محمد سلالله علیه و علیه طیبین و الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى قيام يوم الدين يا ایوها الذين آمنوا سبروا و صابروا و الله لعلكم تفلحون اوسیکم عباد الله به تقوا الله و اخوف فکم من اقامه و اخوف فکم من اقابه شما خوبان شما نمازگذاران رو دعوت به تقوا حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دارم. حضرت مولا علی علیه السلام فرمود که ایوهن ناست انما دنیا دار و مجازن ول دار و قرارن فخوزو من ممركم لمقركم خطبه دویست و سه مردم دنیا سرای گذر هست هیچ کس تو این دنیا مندنی نیست حتی وجود نازنین رسول الله نکمیتون و اِنَّهَمْ مَيِّتُونَ کُلُّ من عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكْ ذُلْ جلال وَلْ دنیا جای گذر هست آخرت خانه جاویدان هست ما ایم و آخرت فَخُدُو من مَمَرْرِكُمْ لِمَقَرْكُمْ از این دنیایی که رفتنی هستید توشه عبدی عبدیتتون رو برگیرید این توشه با تقوا به دست میاد و تزدفتون فَإِنَّ خَيْرَزَادَ ات تقوی با تقوا حریم نگهداری برای خداوند این توشه فراهم میشه در خطبه های اول سبک زندگی قرآنی رو با الهام از یا الذین آمنوهای قرآن پی میگرفتیم موضوع بحث این خطبه ما آیه دویست سوره آل امران آخرین آیه است. گفتیم این یا ایوه الوزین آمنوها که حدود نوت در قرآن داریم سبک زندگی است. در آیه دویست میفرماد میخواید پیروز بشید در زندگی فردیتون در زندگی سیاسیتون در زندگی اجتماعی اقتصادی راز موفقیت و پیروزی شما در چهار انصر هست نر اول صبر هست یا ای یوحنا لذین آمنوس برو مقابم باشید صبور باشید، امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی هست زیل این آیه میفرماید اس برو علی دین سر دینتون با هیچ کی معامله نکنید شما اید و خدا صبوری پیشه کنید این صبوری این آیه صبر در عرصه فردی است. چون صبر در عرصه اجتماعی با سابرو بیان شده در طاعت خدا صبوری پیشه کنید نماز و با توجه بخوانید بی ۴ ساعت حرفهای زیادی میزنیم، صحبت زیادی با یکدیگر داریم. خب ده دقیقه یه رو کمتر بیشتر که با خدا حرف میزنیم راسیراسی با خدا حرف بزنیم خشوع و خضوع در سالات داشته باشیم. این صبر در طاعت روزه به خصوص تو هوای گرم تشنه میشی آب به اصطلاح میچسبه به گرسنه میشی غذا لذیذ میشه صبر در طاعت میگه خدا بهت گفته ماه رمضان خوردن و آشامیدن از مفترات استبرو در جبهه نقل و نبات که پخش نمیشه در جبهه اون چه است گلوله است یا ایها الذين امنس برو صبر در اطاعت خدا داشته باشید صبر در برابر معصیت خدا معادس خط قرمز خدا و به تعبیر روایت نوعا توش لذت صبر در معصیت یعنی در برابر خط قرمز خدا وایستی جلوتر نری این میشه صبر در محصیت محصیت فردی اجتماعی سیاسی انواع محصی نماد ایستادگی در برابر شیطان نگذشتن از خط قرمز خداوند در قرآن جناب یوسفه که سوره یوسف با بیش از هزار نکته آموزنده دستها از این پیامبر بزرگ مطرح شده نماده کسی که همه زمینه گناه براش مطرح قال معض الله نهتبی احسن صایی تو کار به جایی میرسه که بهش میگن یا زندان یا گناه میگه زندان میرم رب سجن احب علیم ما اوننی علی بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود البته خدا هم این گذشت ها رو بی پاداش نمی گذارد حتی تو همین دنیا من قول میدم قول قرآنی هم برای شما نماز گذاران عزیز و هم اونایی که بعدا می بینند. جوانی که تصمیم بگیره از خطوط قرمز خدا عبور نکنه نه یک روز نه یک ماه تصمیم بندگی داشته باشه خدا نمیگذاردش نمیگذاره زمین بخوره به چه دلیل؟ به دلیل آیه نبد سوره یوسف انه من يتقى ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين حضرت یوسف تمام زندگی تو همین یه آیه خلاصه میکنه من یتق یعنی همه به خصوص جوانها حریم برای خدا نگه زمینه گناه فراهم اما خدا میگه نه بگه چاش هزینه ام داره سخت مقاومت در مقابل لشگر جرار شیطان صبوری پیشه کنه چنین کسی محسن به تعبیر ادبی شرط در اینجا آمده جزا حذف شده هرچی محسن بود خدا عجرشو زایع نمیکنه تو همین دنیا هم برنده است یا ایوهاللزین آمانوس برو صبر در برابر معصیت یکیشه یکی هم صبر در برابر مصیبته الذین اذن آثاربهم مصیبه قالوا انا لله و اِنا علیه راجعون در برابر مصیبت هم صبر کنه آدم یعنی گریه نکنه هیچ کس نگفته گریه نکنه گریه بسیار طبیعی است جلال خدا نکنه تسلیم تقدیر خدا باشد الهی رزن به رضائک آخرین سخن سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین الهی رزن به تسلیم من لامرک لا معبود سواک این صبر در مصیبت این روزها روزه روزهای سخت آزادگان کربلاست سیناب کجا مجلس ابن زیاد کجا اون هم به انوان اسیر دختر علی رو در شهری به انوان اسیر آوردند که چندی پیش در زمان خلافت پدر مفسر قرآن تو این شهر زنهای این شهر شاگرد زینبند کیفر سن الله به برای اینکه نمک به پاش بر زخم زینب خدا با داداش چه کرد این تربیت شده مکتب علی گفت ما رایت الا جمیلا این یعنی صبر در مصیبت یعنی اگر بر بردیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبینی یا ایوهاللزین آمنست برو در قرآن نوزده بار خطاب به پیامبر آمده وست یا فست بر سوره احقاف آیه 35 صبر اول من این معناش اینه همه نیازه به این انصر دارن اونایی که در جایگاه رهبری در جایگاه مدیریت جامعه هستن این عنصر رو بشد لازم دارن در سه آیه هم خطاب به ها واتي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح الحكم ان الله مع الصابرين انفال 48 و قران این قول میده از شما تقوا از شما صبوری از شما استقامت از من خونسا کردن توتعه های دشمن این وعده های خدا را باور کنیم سوره آل امران آیه 120 و انتصبرو و تتقو لا یزر رو کم کهی هم شیعا سبوری پیشه کنید حریم برای خدا نگهداری، پشتیبان داری پشتیبان ذات مقدس ربوبی است باور کنیم این وعده های خداوند را میخواستم امروز این آیه را به اتمام برسانم اما با خودم قرار دارم طولانی خطبه نخوانم اما وقتی اسم شیرزن قهرمان کربلا زینب رو بردم گویای ندای درونی به من گفت این جمعیت و نمازگزاران را با پای دل ببریم به زیارت حضرت زینب زبان آجز است از توصیف شخصیت زینب اگر بخواهیم تالی تلو معصوم رو ذکر کنیم در بین بانوان در خط مقدم زینب هست زن مگو مردافرین روزگار زن مگو بنت الجلال اخت الوقار زن مگو خاو که درش نقش جبین زن مگو دست خدا در آسین روز آشورا دید شهادت بیستن از عزیزانش دوتا فرزند عزیزش در رکاب سیدالشهدا و هستن برادرها بدن قطعه قطعه عبی عبدالله رو هم دید و اولین مجلس روزه را او در گودان قتلگاه برپا کرد نجوایی داشت با این بدن قطع قطع اما نمیدانم چه اتفاق افتاد زینبی که این همه مصیبت دیده چند روز پیش در دروازه کوفه گفت ما توهمد یا شقیق فعادی کربلایا رفتند یعنی داداش همه ی مصیبت ها رو دیدم بدن قطع قطعت را دیدم اما باورم نمی‌شد. یه روزی سر بریدت و بیش چشم زینم ماتا و حمد یا شقیق فعادی کان حاضا مقدرن مکتوبا در این حال که با سر بریده بابا صحبت میکند نازدانه ابی عبدالله در دامن امه نشسته دید نگاه میکنه خیره خیره به سر بریده بابا گفت حسین جان با من حرف نمیدنی حرف نزن یا اخی فاطم از کلمها کلم ها کاد ها ان یروبا السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاب الحسین و علی اصحاب الحسین پربدگارا ما را نسل ما را ذریه ما را کشور عزیز ما را تا همیشه حسینی زنده بدار حسینی بمیران بسم الله الرحمن الرحیم انا عطیناک الكوفر فصل لرب وانحر انا شانع که حبل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و ونعوذ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سعيات أعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على عبدك و سيد المرسلين، و علي امير المؤمنين، و على فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، و الإمامين الامامين الحسن و الحسين سيدي شباب لالجنة اجمعين. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الصالح الهجة القائم اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا و उसीكم عباد الله بتقوى الله و عباد الله بتقوى الله و اخوفكم من عقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دارم مولا علی فرمود اما بعد فئن اوسيكم بتقوى الله سفارش میکنم شما رو به حریم نگهداری برای خداوند تقوا الی ابتدع خلقکم خدایی که آفرینش شما را آغاز کرد و الهیتون و معادکم به او باز میگردید باید پاسخگوی او باشید و بهی نجاح و طلبتکم دل به او ببندید اوست که خواسته های شما رو اجابت خواهد کرد انشاءالله که خدایی زندگی کنیم و در اون جهان با دست پر وارد محشر بشیم و پرونده اعمالمون رو به دست راستمون بدن در خطبه دوم دو تشکر دارم دو گرامی داشت و شش تحلیل. تشکر اول زبان آجز است تشکر کند از عزاداری با شکوه و با صفایی که شما ملت حسینی و آشورایی به صحنه آوردید دلم روشن روشن است که این ملت آشورایی این ملت کربلایی با این روحیه به فضل خدا دیگر روی ذلت را نخواهد دید ملتی که فرهنگ حیات من در جامشون نشسته به فضل خدا همیشه عزیز خواهند بود راه درست رو پیدان کردید این سرمایه نفیس، این سرمایه ارزشمند رو گذشتگان ما به نسل ما بسوندند و ما این امانت رو به آیندگان به سپاریم تشکر دوم از تودیع با شکوه جنازه با شکوه شهید بیسر شهید خججی این نماد بود خانواده های معظم مدافعان حرم توجه به این داشته باشند مردمی که صحن جامع رضوی پر بود برای تودیعش مردمی که در تهران آن شکوه را در تشیع آفریدند مردمی که در اصفهان در میدان امام اصفهان آن شکوه و عظمت را آفریدند و در نجف آباد تشیع با شکوه بی‌نظیر را سامان می‌دادند سامان دادند و من معتقدم اگر فرصت می‌بود این پیکر پاک را به هر یک از شهرها و استانهای کشور می‌بردند همین شکوه بود و همین عظمت تجلیل از شهید حججی تجلیل از تمام شهدای مدافع حرم بگذار بالاتر بگم تجلیل از همه شهیدان بود خدا خیرتون بده که در این عرضه هم خوش درخشیدید اما دو گرامی داشت تیه یکی دو هفته گذشته دو عالم بزرگ را از دست دادیم فقیه وارسته همراه امام آیت الله شیخ حسین راستی کاشانی که از سابقون حواداران و همراهان امام در نجف اشرف و پس از آن تا آخر عمرشون بودند مرحوم آیت الله روح الله شاهابادی استاد زاده امام این فقیه زاهد و فقیه وارسته امیدواریم حشر این دو بزرگ با یاران سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشد اما شش تحلیل تحلیل اول راجع به هفته نیروی انتظامی است که امروز نماز جمعه مزین به حضور این عزیزان خدمتگذار هست حقیقت این است نیروی انتظامی مایه آبرو و عزت نظام اسلامی است این عزیزان در عرصه‌های مهم امنیت ساز حضوری قاطع و ستودنی دارند در عرصه مقابله با مواد مخدر در عرصه مبارزه با قاچاق کالا در عرصه مبارزه با مزاحمین نوامی در عرصه مقابله با ارازل و اوباش کارها است که در مرآ و منظر مردم ما هست مردم اینها رو میبینند از صمیم جان علاقمند به فرزندان خدوم عرصه امنیت هست قرآن کریم برای یک جامعه نمونه ویژگی بیان می کند الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یعنی ها رزقها رقدن من كل مکان این ویژگی اولش امنیته دومش اقتصاد تأمین کننده زندگی دومش به ترتیب آیه منا کنم آرامش هست و سومش اقتصاد سالم اقتصادی که آبرومندانه زندگی اونها را تأمین کنه امنیت زیربنای همه توسعه هاست توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی توسعه سیاسی هیچ کدوم از اینها بدون امنیت شکل نمی گیرد و این عزیزان خدمت گذاره. این عرصه هستن ما خدا قوت به همه عزیزان نیروی انتظامی در سراسر کشور ببیگه شما عزیزان شرکت کننده در نماز جمعه می ده. مسئله دوم مسئله حجمه به رئیس قوه قضایی هست از اول انقلاب نظام و انقلاب هدف بوده و از جمله روش‌هایشون تخریب مسئولین عالی رتبه یادمون نلفته، تخریبی که از شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی داشتند. اون روزها اینا رو آوردن به ترور سخت افزاری ترور میکردن فیزیکی خب الان روش عوض شده وارد ترور نرم افضاری شدن و تخریب شخصیت این رئیس مجتهد قوه قضایی ریشش هم روشنه مطلب دوم من اینه که ریشش روشنه قوه غذاییه عزمشو جزم کرده با مفسدین اقتصادی قاطع برخورد کنه رئیس قوه قضایی محکم در برابر فتنگران ایستاده اینم هزینش به همدلله خودشون هم متوجهند که با این ترفندها میخواهند اونها رو از هدف والایشون باز دارند که نخواهند توانست نقطه سوم این است که هم وزیر مخترم اطلاعات و هم رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه این تهمت ها را کردن رئیس مخترم سازمان اطلاعات سپاه گفته است که طی ماهای آینده ما شاهد اتهام زنی به دیگر مسئولین هم خواهیم بود عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد با این دروغی که گفتند به فضل خدا ملت در برابر همه خبرهای اینا یه علامت سوال بزرگ میذاره اجازه بدید من وقتم کمه ممنونم یک علامت سوال بزرگ میذارن و این گامی در مسیر بسیرته این همون عرض است که بارها از این منبر به تعبیر مقام معظم رهبری ایشون تریبون نمیگن از این منبر ما گفتیم که اخباری که از ناهیه بیتقواها داده میشه نباید بلافاصله گوش کرد و ترتیب اثر داد و نقطه چهارم است که با همه اینها به نظام نظام مقتدری است قطعا مسئولان نظام می دانند که منشه این, این شایعات است یک سایتی است که بهایی ها تزدیقش می کنند. تأمینشون از طرف بهایی من نام نمی برم. اما مسئولان محترم شما که به حمدالله مختدری این سایت های ضد انقلاب رو میشناسید با این سایت های ضد انقلاب قاطعانه برخورد کنید تحلیل دیگر در باب غصه مکرر برجام هست که به همدلله شما مردم عزیز در جریانید که امریکا هم جسم برجام رو نقض کرده هم روح برجام رو هیچ از برجام باقی نگذاشته حرفی که دارند دارن میزنن میگن باید گفتگوی مجدد صورت بگیره به همدلله مسئولین ما هم یک صدا گفتند و میگویند برجام قابل مذاکره مجدد نیست این موضع درسته ما این موضع را تقویت میکنیم موضعی در شعن عزت ملت ایران هست و به مسئولان محترم میگم به عنوان امام جمعه نماز جمعه آزاده تریبون نماز جمعه تریبون مردمی کارهای دیپلماتیک مال وزارت خارجه است ما اینجا هر شما مردم رو میزنیم حرف ما این است به خدا اعتماد کنید به این مردم اعتماد کنید خوبانذی ایدتک بنصر هی و بالمؤمنین روز مبادا همین مردمند دل نبندید به حمایت اروپا حمایت قاطع اروپا ما درگیر نیستیم با اروپا و خوب است که مسئولین ما تعامل دارند اما شما مطمئن باشید اگر امر اروپا دایر باشد بین این که ایران رو انتخاب کنه یا امریکا را امریکا را انتخاب میکنه دلخوش به حمایت اروپایی ها نباشید شما مسئولان محترم همگیتون یک صدا گفتید که امریکا نقضه برجام کرده مسئول سیاست خارجی امریکا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمریکا مایست ام کرده و میگه نغزه برجام نشود موضوع دیگری که میخوام محضرتون عرض کنم از وقت هم نگذره قصه همه پرسی در اقلیم کردستان در خطبه قبل گفتنی ها رو محضرتون گفتیم متاسفانه مسئولان اقلیم کردستان گوششون کردستان عراق گوششون به حساب بدهکار نبود و سرانجام سوم مهر با همه پرسی به تعبیر مقام معظم رهبری خیانت رو صورت دادند ولی خوشبختانه اونی که اینها رو ناکام گذاشته این است که جهان همه پرسی اقلیم کردستان را به رسمیت نشناخته حتی امریکا که ارباب صهیونیستها هست بیانیه دادند گفتند به رسمیت نمیشناسیم حتی رژیم صهیونیستی که قبل از برگزاری همه پرسی حمایت میکردند رسما حمایت نکردند گرچه موزه امریکا و سحیونیستاد در این رابطه رندانه به نظر میرسه وحدت و هم پیمانی که بین عراق و ایران و ترکیه هست راه کاره باید تا دیر نشده مسئولان محترم یک پیمان قوی با هم ببندن و نگذارند این بذر به ماسته باید تا قبل از اینکه این, این بذر جان بگیره توتعه را در نطفه خفه کنند راه حادثه لاس در امریکا حادثه‌ای است که خطیب جمعه نمیتونه ازش بگذره یک آدم آمده طبقه سی دوم یک هتل شست نفر و حدود بیش از 500 نفر رو مجروح کرده ما سه تا حرف داریم حرف اولمون اینه ما کشتن بیگناهان رو در هر جای دنیا محکوم میکنیم چه در لاسبگاست باشه چه در یمن باشه چه در سوریه باشه چه در بحرین این چه با بشریت دوگانه برخورد کنید اونجا محکوم اما اینجور یمن تبدیل به تلیت خاک بشه این همه انسان بیگناه گناه کشته بشن آقای خم به ابرو نیارن این نفاق است دو تو خبرها این جمله آمده بود که هفتاد و دو دقیقه این قاتل با آرامش چند تا خشاب عوض کرده و این همه آدم را کشته و مجروح کرده شما مقدرین؟ هفتاد و دو دقیقه دم از اقتدار میزنید ما چنین و چنانی یاد بگیرید از نیروی انتظامی ما قبل از این که ای صورت بگیره همین عزیزان نیروی انتظامی ما توتعگر را سر جاش می نشانن. حرف سوم ما هم به مردم امریکاست به مردم امریکا میگیم از دولت مردان و دولت زنانتون بخواهید به جای اینکه فضولی تو کشورهای دیگه کنن اسلامی و غیر اسلامی در هر جایی که شلوغ پلوغی هست یک پای امر... توطعه فضولی های امریکاست از مسئولانتون بخواهید بس کنن به فکر کشورشون و به فکر امنیت شهروندانشون باشند. اللهم مطفل المؤمنین و المؤمنات و المسرمین و المسرمات نظام اسلامی ما رو در پناهت محافظت بفرما مقام معظم رهبری در پناهت محفوظ بدار امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده اسلام و مسلمین نطرت انایت بفرما توت ها خونسا توت گران نابود بفرما عداداری ها ما را به امزای آقا بقیت الله الاعظم برسن قلب مقدسش را از همه شاد و خوشنود بفرما در فرجش تعجیل بفرما بسم الله الرحمن الرحیم بلعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمن و الصالحات. و بالحق و تواستو بالصبر و السلام علیکم الله و برکاته